سلیمان مست، قونیه، زیهجه چیزهایی را که امشب شاهدش بودم، غیر ممکن است فراموش کنم به خصوص اتفاقاتی را که بعد از آیین سما افتاد مراسم که تمام شد، که خسرو از جایش بلند شد و با حالتی مقرورانه انگار که از دماغ فیل افتاده باشد، نگاهی به اطرافش انداخت. بعد با آن ادا و اطوار خاص حاکمانی که به نیروی خود واقفند و عادت دارند همیشه با دمجان دور قابچین اطرافشان بپلکند، نزدیک میدان آمد و گفت به همگیتان تبریک میگویم، شب با شکوهی تدارک دیده بودی. از آین خوشمان آمد. مولوی با نزاکت تشکر کرد. دیگر درویش ها هم تشکر کردند. نوازنده ها از جایشان پا شدند. یک جا جمع شدند و با احترام به سلطان سلام کردند. صورت که از شادی برق میزد به یکی از محافظهایش اشاره کرد. محافظ فوراً کیسه مخملی بنفش رنگی آورد و به دست سلطان داد. که خسرو برای آنکه به همگی ما نشان دهد توی کیسه چقدر سکه طلا است، آن را چند بار توی دستش سبک سنگین کرد و بالا و پایین انداخت. بعد کیسه را به وسط صحنه پرت کرد. تماشاشی ها به نشانه تأیید و سپاسگزاری برایش کف زدند. سلطان چقدر بخشنده است که خسرو راضی از کاری که کرده بود و با حالتی از خود مطمئن پشتش را به میدان کرد و با همراهانش به طرف خروجی راه افتاد اما هنوز چند قدم بیشتر نرفته بود که کیسهی که کمی قبل روی صحنه پرت کرده بود در هوا پروازکنان آمد و جلوی پایش روی زمین افتاد همه چیز آنقدر سریع اتفاق افتاد که ماه برد در جا خشکمان زد اما بدون تردید آنکه بیش از همه حیرت کرد که خسرو بود این حرکت آنقدر عمدی بود و چنان آشکار و عیان انجام شده بود که امکان نداشت بخشیده شود. کیخسرو از بالای شانه اش با چشمانی که ناباوری از آن میبارید پشت سرش را نگاه کرد. به نظر میرسید میخواهد بفهمد چه کسی بوده که کیسه را به طرفش پرت کرده. البته که شمس بود. مگر ممکن بود کس دیگری باشد ای درویش دیوانه فوری همه سرها به طرف او برگشت درست وسط میدان دستها به کمر سیخ ایستاده بود با چشمهای سیاهش به کیخسرو زل زده بود با صوتی داوودی گفت ما برای پول سما نمی‌کنیم سما، پایکوبی و دستفشانی معنوی، آسمانی و روحانی است. تنها و تنها به خاطر عشق انجام می شود. برای همین بگیر پولت را. تلاهای تو در مرتبه ما ارزشی ندارد. سکوتی وحشتانگیز همه جا را گرفت. سلطان ولد پسر بزرگ مولوی کنارم مثل بید می لرسید. کسی جی کش در نیامد توی این حیث و بیس، انگار همین را کم داشتیم که باران هم بگیرد قطراتی که از آسمان بی به روی من آرزویمان را برای فرار کردن و رفتن از آنجا بیشتر کرد کیخسرو خشمگین از این که نتوانسته جواب شمس را بدهد، رو به افرادش کرد و فریاد زد. یالا برویم. سلطان با اعصابی به هم ریخته به طرف خروجی به راه افتاد. با چکمه سنگینش کیسه طلا را که روی زمین افتاده بود، لگت کرد و رد شد. محافظان بیشمارش فوری پشت سرش حرکت کردند. آنها دلشان نمی آمد کیسه را لگت کنند. از رویش می پریدند و می رفتند. همین که کیخسرو و افرادش از آنجا خارج شدند، ارولونت ها شروع شد. گفتند این یارو دیوانه است. برایمان من درد سر درست می کند. بعضی ها کنان گفتند، این شمس فکر می کند چه کاره است؟ دیگران در حمایت از آنها گفتند، با چه جرعتی به سلطان توهین می کند؟ اگر کیخسرو تصمیم بگیرد به خاطر این کار کل شهر را مجازات کند، آن وقت چه؟ بد جوری به شمس نگاه می کردند. شیخ یاسین و شاگردهایش هم در این میان آتش بیار معرکه شده بودند. همگی با حالتی مقرور و متظاهر بلند شدند و آشکارا اعلام کردند شمس را نمی بخشند. جالب توجهتر از همه این که در میان دستهی که با عصبانیت آنجا را ترک کردند، دو نفر از قدیمترین مریدهای مولوی و پسر خودش علاعالدین هم بودم